اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان تشتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما برای این آیه سوالی نوشتن که جلسه گذشته شما فرمودین که گناه های کبیره و صغیره هر دو گناه هستند و فقط در شدت و ضعف متفاوتن خب این آیه چگونه با صحبت های شما تطابق داره این آیه شریفه بارتون اخرائه اون قسمت از آیه قرآن هست که ان یوزهبن از سیاد کارای خوب سیاد رو میشوره و عزوه میبره کلن مثل که روی نجسی بدیزی یکی از مهمترین از حسنات دوری از کبائله این هیچ منافاتی نداره با اون نسبی بودن گناهان هر گناه نسبت به گناه مثلا پایینتر این میشه کبیره مثلا از کردم در ده میلیون دوزی کنه با صد میلیون دوزی کردم اون صد میلیونه نسبت به این ده میلیون بزرگتر هست اگر هر دوشت دزیه هم عقاب دنیایی داره هم عقاب آخرتی داره. آیه شریفه میفرماید که اگر از کعبه رشتناب کنید و کنار بذارید کعبه رو سیاه‌اتتون رو ما میپوشونیم و از می بریم اگر کسی سد رو بذاره کنار خب ده هم میذاره کنار. حالا میگه خب ما یک مشکلی مثلا نادونی که انجام دادیم ولی من دیگه دست نمی دانم به گناه خدا به واسطه این اجتناب از گناه کبیره گناه حد پایین ترش رو می بخشی.